دجال در قدام جزیره هست دجال در قدام جزیره هست این دیگه معلوم قطعا معلوم نیست در قدام جزیره اما بعضی میگویند که احتمال داره در مسلس برمودا باشه بعضی دا دا تحقیقات دانشمندان روز هست اینو به اصلاح خیلی به نتیجه رسیدم در مسلس برمودا هست اما خود دجال و دا تمیم داری رضی اللہ تعالی نهو ملاقات کرد تمیم داری همون صحابی هست که نبی قلع از روایت میکنه. این لطیفه ای که تانا صحابی که نبی کهی غوایت میکن تمیم داری میگه حد دست را تمیم داری برای ما تمیم داری برانکر تمیم داری سوار کشتی شو کشتور بگه زیری دا تو برای جساسو آمار ایه شخص مسئول دجار دجار اونو بور داخل غاری بس بازن جیران بستمو پس سواله های رو کرد تو آیه پیغمبر آخر زمان آمده گفت بله گفت ایمان بیایی بنفش ما هست پس وقت ظهور نزدیکه با باقی کسان که در اردن و اسرائیل چگونه گفت این خوش میشه این زغر چشمه زغر اونجا بود این خوش میشه این نخواه خوش شده من بعد می آیم ایک از این از پیغمبر بیاد پس پیغمبر آمده دو تا دیگه مونده ایک نخلستان کسان هست و ایک این زغر هست این که از بین رفت من می آیم نخلستان کسان تقریبا خوش شده من داره تقریبا از و. بین اسرائیل و اردن و به اصطلاح عمودین اصلا یحت که الله بازم دریاچه هست دریاچه خوش شده داخلین دریاچه در آب تزریق میکنه جهه دیگه تا از بینره اینها که از بینرن دیگه در جاله اندی تشویم میارن دو مردم گومره میکنه این خبیص وقتی که بیاد این قرد فتنه خطرناکیه بدتری فتنه که میاد دجاله از زمان حضرت نو تا پیغمبر آخر زمان هر پیغمبری آمده را از دجال ترسانده و ایک از علامت دجال این که ذکر دجال از بالای منبره پایل میاد یعنی هیچ کس نام دجال نمیگیره همو زمان میاد حالا همه هیچ در دجال نشوش نمیگیره در مصاحبد و در خود خطبه ها و در سخنرانی ها نام دجال ورده نمیزی زمان یک مردو از دجال غافل میشه اون زمان دجال میاد زیاد هم نمونده علامت دجال کلا اوندیان علامت بزرگی داره یک از علامت بزرگ الا همین علامت بودم در عود نخلیستان در خوش میشه یک شخص از میرفته اون در دار در حال خوش شدن است اگر آب داخل تذریر نکنن خوش میشه این این اتفاقه داره از بین میره و بعد این از که روی پیش اندجال نویشتا کافرا قبل هم گفتینا روی پیش اندجال کافرا و اون ها که مارک ملیدی خود اسفائیل مارک کافرا هست و در خود به اسلام مقام لود کشته میشه و لود در اسرائی اسرائیل قرار داره محلی که فرودگاه بیرونی اسرائیل است حالا این که دجال میآید خود خدا خود دجال این مشکلی اجرا که یهودیان به حمایت نہیں کنا کنن کل هامین دجال یهودن چرا؟ اونا میخوان با پشتوانه دجال با کمک دجال بر دنیا مسلط بیشن دجال رو جلو میکنن دجال شیطانی میکنه دنیا رو خرام میکنه اینا پشتش میرن دجال بتوان کل دنیا رو تسخیر بکنن دجال کار نمیتونه بکنه حضرت عیسی انشالله اون از بیمی بره و کل انسان که بیدین میشه دواره با صلیب حضرت عیسی دوار بیدین برمیگردن نزول علا نزول حضرت عیسی مهدی در در این اتفاق خاصیه یعنی زمانیک شایی میشه شایی میشه در جال اما یک جال یک شایی حضرت وقتی مهدی میاد دو سال حد مهدی هشت سال دو سال فعالیت میکنه بعد از اون ای حضرت عیسی می شایی میشه در جال اما در جال اما در جال اما هر شایی هست در این زمان شایی ها زور میکنه. در این شایعات و حدود زمان حضرت فیسا هم میت پایین و هم به فکر هم دیگر میرن تقریبا در یک وادی, وادی اردن اونو از به میبری نماز فادر میخانه با نماز فادر اون روز نماز در تاریخی میخانه نماز خونده میشه از روغه تمام کل مجاهدی میگن که باید با تمام نیرو حالا جنگیم. تا کشته بشی نماز فادر وقت خونده میشه سفار درست میکنم حدر تیسا بیا جلوب خودش میگه که بین من و بین د تا دجار ببینه تا دیدی که در نظر خود ایسا کار میکنه اونها بل میره برنفرسی حضرت ایسا اونها زواب میشه تاک نزدیتر میره زواب میشه تم کم کم کم کم تا اون کلان از نین میبره